کی کیسود جلد دوم فصل دهم. ده سنگ سرطاق جهانهای بهشتی وصول به جاودانگی روح در گرو ایثار و گذر از مشقات و مقتضیات زندگی فیزیکی می باشد این سخن تین در استاد زبردست است که در معبد حکمت ذرین آتمالوک مسئول حراست از شریعت کیسودماد می باشد او میگوید تنها کسی که از جان و دل همه چیز را وقف به اک می کند و حتی تنپوش خود را به هم ایثار کرده و حاضر است زندگیش را به خاطر همگان فدا نماید مهانتا استاد حق در قید حیات است. آن هنگام که او برای خاطر دشمنان پرکین خود با وجود آن که زخمها بر اوزده اند و خاطر گرانش را آزرده اند به کام مرگ می رود، به جاودانگی آتمالوک می رفت. در اوراق زرین شریعت کیسودمان آمده است که روح سنگ سرطاق جهانهای های بهشتی است آن با تحمل رنج و مشقت به خاطر آن رسول دیرین یعنی ماهانتا استاد حق در قید حیات که شمع زندگی و وجودش در پهنه جهانهای روانی و اقالیم بهشتی برای خاطر انسان می سوزد، تطهیر می گردن. استاد حق همواره در این جهان حضور داشته است بنابراین زمانی نبوده که انسان نتواند راه به عرش رستگاری ببرد او همیشه فرصت تسلیم به ماهانتا استاد حق در قید حیات را داشته است و این امکان علا اعمال و کردارش در هیچ یک از مقاطع زمانی از وی دریق نشده است تجارب زندگی های گذشته همواره در وجود انسان درج است و بی سر و صدا و بدور از حواس کاملا انان او را به دست می گیرند. ولی او هرگز این را نمی فهمند. او به ندرت از امکان ارتباط سری و فردی خود با مهانتا استاد حق در غیر حیات خبردار می شود اینکه رغم این آدمی به واسطه قصور و قفلت‌های کارمیک و اتخاذ خیلی انبوه دیدگاه‌ها و رفتارها در خلال زندگی‌های بیشمارش بایستی در رنج و ملال بسر برد اما استاد حق در غید حیات همه چیز در زندگی به او می‌بخشد و تمامی داشته‌هایش را به بی‌نثار می‌کند ماهانتا برای مساعدت معنوی به کل نجاد بشر در زمین ساکنین سایر سیارات و تمامی وجودها و انتیتیهای جهانهای پایین سوگماد خود را قربانی می کنند. او با خون خود و با درد و رنج عهدهدار شفاعت انسان در برابر کار کارمیکی می گردد که بشر را به کل مقروض ساخته است او به واسطه تسلیم تمامی تعلقات مادی زندگی خیش و با وقف خود به نوع بشر همه وجودها و کل لوازم تینت انسانی کمالات خیش را مصروف می نماید اگر فردی مسکین در حضور ماهانتا طلب قضا کند استاد غوت خود را به او می بحشد. اگر شخصی جند پوش در حریم حضور استاد محتاج به تنپوش باشد ماهانتا ردایش را به او می دهد. اگر کسی با وجود شرارت های زندگی فیزیکیش در هوای دریافت برکات مهانتا باشد استاد حق در غیر حیات نفخات خیش را بر سر او می ریزد. حضور ماهانتا در طور قالب انسانی باعث می شود که اصول الیت و مقدمات فکر و نظر بشر شبکی منطق و عقل او را بر روی یک علت اصیل و کنیخانی بگوشاید و آن سوگ ماده است تین میگوید کسی که چون این علت الالی را نفی می کند حق ندارد که هیچ علتی را به هیچ حقیقت دیگری نسبت دهد اگر میگویید که ماهانتا وجود دارد زیرا سویماد چنین اراده کرده است پس دیگر لزومی ندارد که فراتر بروید، زیرا انسان در صورت بیخبری از قوانین مطلق اک در گرداب گناه زندگی میکند و هیچ نقطه التجا و اتکایی ندارد ماهانتا از هر آنچه که در حیطه شخصی چلاهایش برقرار است خبر دارد. او از ذهن تمامی انسانها از گذشته و آینده و همچنین از سرنوشت نژاد بشر آگاه است. او میداند که کل نیرنجان همواره مترسد انهدام اوست کل با زیرکی شروع به شورانیدن ذهنها بر علیه ماهانتا می کند تا این مجرای مقدسی را که بر روی زمین دیوای معلمی کل ابنای بشر را برتن کرده است از میان بردارد البته کل غالبا موفق می شود اما در مواقع زیادی نیز شکست می خورد زمانی که عوامل کل با تملقات عجیب و های ظریف و زیرکانه چیزی را به ماهانتا پیشنهاد کنند، او متوجه می شود که هدف اصلی آنها از میان برداشتن کالبد فیزیکی اوست اما این پندار توهمی بیش نیست ترپندهای عمال کل همواره عقیم می‌مانند، زیرا ماهانتا در مکان و زمانی دیگر و با کالبدی سلامت دوباره ظهور کرده و ثابت می که قدرت قلبه برمرگ را دارد و جابدانه شده است و فقط از قوانین وجوب کالبدی این جهان پیروی می کند. اگر کالبدش متلاشی شود مجددا از خاک بهمی خیزد تا به پیروان نزدیک خود بگوید که حتی با ازمهلال هلال کالبد هم میتوان جواب دانی شد و به قول تین درتاکی ماهانت قائم به ذات است کفیک درون همه حضور دارد زیرا کل در درون اوست او عین جوهر ذات است و به همین سبب توسط حواس فیزیکی قابل ادراک نیست و فقط روح قادر به کشف اوست. او همان است که مبرا از رنگ و نقش مرئی است الا قالب فیزیکیش بنابراین این جاودان است و هیچ یک از محورهای هوشیاری ادراکش نمی کنند مگر آن که در جهانهای بالای اک و در قالب آتما ساروپ بقا یافته باشند. در آگاهی مهانتا او خالص از تغییر می باشد و بی شکل و بینشان است او عالم مطلق، حاضر مطلق و قادر مطلق است او در نقش ابزار سوگماد خالق حیات و انرژی های جهان هاست ها و سرآمد همگان می باشد جاودانگی روح قانون سعت و احاطه ابدی عشب است روح یکیست اما انسان در گیر دوگانگی و به عبارت بهتر سگانگی است. بشر حامل دو اصل است مذکر و معنیست و اتحاد این دو اصل مولد سوم است که است. و نکته وحدت مذکر و معنیست و به عبارتی تعادل بخش وحدت و کسرست می انسان حاصل اصل وحدت در کثرت است و تمامیت این جهان را همین اصل تشکیل می‌دهد این شامل مرد و زن عشق شوهر برای همسر و عشق همسر برای شوهر است که سومین صورت یعنی فرزند را خلق می‌کند و فرزند نقطه تعادل دو اصل مذاکر و می گردند در زندگی جاودانه همه چیز در سیالهای به نام اک شکل گرفته و باقی میشوند. همه چیز به اک تغییر کرده و صورت انتظام می آبند. کل آفرینش بایستی در پرده رمز و راز باقی بماند و به واسطه همین است که راه رسوخ به اسرار بر بدندیشان مسدود می گردد. این پایه و اساس زندگی جاودانه روح بوده و راز ابدیت است اگر چلا اسراری را که توسط ماهانتا استاد حق در قید حیات بر او جاری می‌گردد عیان سازد در مسیر مستقیم شریعت و طریقت به بنبست می‌رسد کل مراقب و مخارج اسرار در هر آنچه که ماهانتا در کام حواس شخصی چلا می‌ریزد منتشر است و تفاوتی هم نمی که پیش پا افتاده بوده و یا عمیقترین ترین هستی باشد کلام او هرگز نباید به سمع عموم و یا حتی نزدیکان فرد برسد برداشتن از رابهای وارده به وسیله مهانتا و یا آشکار نمودن خط هدایتی که ماهانتا با ایشان در پیش گرفته است نشان از آرزه است که به جهت تسلیم به نفس اسرار زندگی یا زندگی را با یکدیگر مبادله می کنند چون این مکالمات عوضی فقط منتج به انباشت کارما در مورد کسانی می شود که به خاطر زنده می ظلمات نفسانی خیش در خصوص خود یا تجاربشان داد سخن می‌دهند. حقیقت، خوبی، عشق و زیبایی معمولاً عناصری شاعرانه قلم داد می اما در جوهر ذات با حقایق و کلام معنوی همان هستند اینها اوصافی هستند که لازم است فرد در کلام و افکارش آنها را انعکاس دهد آنها زبان روح می باشند که بایستی موجب ایجاد یک هوشیاری گسترده و امیق شوند. و انسان را به این ضرورت و استرار برانگیزانند که خودش را به عنوان یک وجود معنوی و جاودان در این کلیت شناسایی کند حقیقت در حرف و ظرف اک نه دارای ماهیت است و نه غریب است و نه در ماتریکس فکر و تصور می گنجد آن توق فر و شکوه در کی؟ جهان شمول و وضعیتی عمیقا عملی و تجربی میباشد اگر قرار است که حقیقت ارزش معنوی خود را باز یابد بایستی تجربه شده و در زندگی چلا به منسهٔ ظهور برسد اکیست انسانی مخلص و معنوی است که بالاترین میزان ایثار را نسبت به همه انسانها روا میدارد دیدگاه بیکرانش او را ناگزیر از درک حضور مهانتا در همه وجودها می نماید و او در همه حال با ماهیت اصلی همه وجودها در می معتقد است آنچه که آدمی در مراقبه دریافت می کند بایستی آشغانه در جهان بیرون خرج کند بنابراین تمرینات محتوم مراقبه و تمرینات معنوی فنای اختیاری از سفاس و تعلقات نفسانی میباشد وضعیت بی حاصل از این سعی و عمل معنوی به نحو شایانی در شخصیت او نفوذ میکند جهانبانان معظم نظام باستانی وایراگی آنانی بودهاند که سیرتشان در تصرف بی سی سی سودماد در آمده است کسی که به این فنا و خاک شدن رسیده باشد می‌داند که مرگ مایه اندوه نیست مرگ صرفا نقل مکان از یک کالبد به کالبدی دیگر است و آگاهی انسان را به وضعیت روح نزدیکتر می تازد. او به عنوان یک رهروب عک واقف است تا زمانی که پیروی از مهان استاد حق در غیر حیات را در لوحه خود قرار دهد هیچ چیزی نمی تواند صد راه او شود. حتی یک نظر اجمالی به بهشت در معیت ماهانتا ترس از مرگ را از دلش می او به قوت اک دروازه های مرگ را با سرافرازی پشت سر می و مقیم کوی بهشتی می گردند. چه بسیار انسانهایی که به خاطر همین نیم نگاه مختصر به ساحت بهشتی خود را قربانی نموده وچان باختند در گرایشت مذهبی انسانها خود را در راه مقاطدی بی قربانی کردند اما در یک انسان زندگیش را تقدیم می و برای اینکه زندگی کند مردن را می آموزد توجه ماهانتا شده و در مستی این ایثار. رفتگاری را تجربه می کند. در راه یافتن گوهر شرط چراغ اک بشر در جپه نابرابر درگیر پیکار با جبر زمانه و همقطارانش گشته است اده کثیری جان باختند و بسیاری در تلاش برای جاودانگی دریدن پرده اسرار و تجربه ایده مذهبی بهشت به خدا ناکام ماندند اما تا شخصی خودش به طور بنیادین به این دیدگاه واصل نشود که این واقعیت آزادی دیرینه است که در طلبش بوده است شاهد توفیق را در آغوش نمی کشد ماهانتا استاد حق در قید حیات تنها کسی است که آینده این جهان را می داند و قدرت دخل و تصرف و تغییر آن را دارد فقط کافی است که اراده کند اما به جای این کار میل دارد که همه مریدانش و تلاهای اک در دوران آشوب و هرج و مرج در تحقق آرامش و ثبات مشارکت داشته باشند او میخواهد به همگان بیاموزد که چگونه مجرای اک واقع شوند او از طریق هر یک از مجراها و یا ابزار اک است که در کل جهان پیرامون تأثیر گذاشته و از تلاطم به سکون و امنیت می رساند. این روندی مختص جهانهای پایین است زیرا ماهانتا در گوشه گوشه این جهانها در حال گشایش ارواح فردی به سوی بلوغ معنوی است و ضمن براوردن این مقصود آنها مبدل به چشمه های آرامش بخش سودماد می شوند تا هر چلایی نتواند خودش آزادی و آرامش را بیابد نمیتواند آن را به دیگران ایثار نماید. اونطور امنیت در درون او رشد میکند و سپس بیخیشی حاصل از آن را با دیگران نیز سهیم می شود تا ایشان هم درجاتی از اطمینان درونی را کسب نماید. البته این در صورتی است که آنها مشتاق پذیرش این کیفیت خدایی در درون خودشان باشند. هر حریم و محیطی ویجگی های منحصر به فردی دارد و هر یک بایستی به شیوهی متفاوت به توسط چلایی که آرزومند برافراشتن آزادی و امنیت در آن محدود است اصلاح گردد. کلام بسی فراتر از دایره لغات و مفاهیم است. آن عجین با گوهر آزادی است. آن پایه و اساس جمله تجلیات ارتباطات ذهنی می باشد در زمانهای نیز کلام میتواند به تنهایی آرامش و امنیت را به انمقان آورد مقیمان وضعیت بیسیشی به لطافت و با احتیاط سخن گفته و کلامات را گلچیم می کنند و بدین ترتیب دیگران را زندگی می بخشند. قدرت نفوذ کلام و ویژگی های قوای بینایی و شنوایی در جهان فیزیکی واقعا حیرت آور است و همین قدرت دستمایه های تاریک کل قرار می‌گیرند و چلا را گمراه می‌کنند پس زمانی که صداهای عجیبی را در کلام شخص دیگری می‌شنوید نبایستی زیاد هم تعجب کنید در اینگونه موارد معمولاً اظهارات فرد مناسبتی با طبع او ندارند و شنونده احساس می‌کند که کلمات به زبان آمده از جانب خود گوینده نیستند این کار انتیتی های تحت فرمان کل رنجان است که میخواهند چلا را از پای درآورند و او را تحت تسخیر کل قرار شخص یک سری تصاویر و چشماندازهایی را مشاهده میکند و به واسطه بینایی شرق شده یعنی تحریک فرکانس دید فیزیکی می تواند مهالود و آنی از این انتیتی های موزی را رؤیت نماید آنها در میدان دید او چشمک میزنند ولی هیچگاه به طور کامل به تصویر در نمیآیند و فقط به او میفهمانند که وجودشان واقعیت دارد و تهدید میکنند که اگر از بیعت خود با مهانتا استاد حق در غیر حیات دست نکشد جانش را میگیرند همچنین در مواقعی ممکن است حرف‌های آنان را نیز در گوش چپ خود بشنود که او را صدا زده و به جای ماهاتا به بی دستور خاصی را توصیه می‌کند اما چون این چیزی صحت ندارد ماهاتا فقط از طریق مجاری درون سخن می‌گوید و هرگز در بعد بیرونی به چلایاش راهنمون نمی‌دهد مگر در قالب فیزیکی یا از طریق نامه رسمی اگر هم آموزشی دهد، غالبا از دستفزارهای درونی سود می جوید و یا اینکه به صورت مکتوب آنها را ارائه می دهد. حتی گاهی اوقات این انتیتی ها سعی می کنند که متون نگاشته شده تعالیم شخصی را که ماهانتا به صورت نامه برای چلاهایش ارسال می کند تغییر دهند البته این مورد خیلی به ندرستیش می آید اما این مأموران کل می رنجان در کمین فرصت هایی هستند که به چلا ضربه زده و او را از اک دور کنند و این را با بی ساختن اک به انجام می رسانند. آنها همیشه وعده مطاعی برتر از اک را به چلا می دهند تا باعث اعوجاج او از تیه طریق اک بشوند. آنها به لحن پیامبران کاذب و اساتید جعلی سخن می‌رانند. آنان موانع و مشکلات ذهنی و جسمی برای چلا میآفرینند. بسیار باهوش عمل می‌کند و صدای خود را برای کسانی که حقیقت اثر آموزش می‌دهند بالا می‌برند تا ایشان را خاموش کنند. این موجودات به دروغ خود را معلمین و اساتید اکنکار معرفی کرده انسان‌های ساده‌لوح را جذب می‌نمایند این پیامبران کاذب و اساتید دروغین که ادعای استادی حق را دارند و یا در هر مسلک دیگری به عنوان استادان معنوی مشغول به تدریس هستند هم پیمانان کلمیرنجان می‌باشند آنان فقط در مناطق روانی اقامت دارند و نمی‌توانند روح را آزادی حقیقی ببخشند ولی همواره اعلام می‌کنند که توانایی‌هایشان قدرت برآورده ساختن این تکلیف سنگین را برای روح دارد. در این دنیا نوشتهجات اک کلام ناب بوده و ما استاد حق در قید حیات وسیله و مجرای اک مقتدرترین وجود در جهان فیزیکی، سیارات و تمامی طبقات جهان‌های خداست. اک ریسمانی است که از فرط ظرافت به چشم نمی آید ولی همین ریسمان از حیث استحکام غیر قابل گستشت می باشد به طوری که همه وجودها را در قافله کائنات خدا و تمامی جهانهای آن را در زمین زمان و ماوراء زمان تا ابدیت با یکدیگر پیوند داده است از روزگار مغرب تاریخ را کنون بشر با توطعه آگاهیش جهش بزرگی را از زندگی حیوانی به سمت حیات بشری انجام داده است اک همیشه این فرصت را به نژاد بشر می دهد که از طریق ظهورهای پی در پی آن همین چیز بلند را به سوی آگاهی برتر نیز بردارند تأثیر این ظهور مستمر آن است که انسان با این قدم دومی که برمیدارد در مقایسه با هر آن چه که از نظر مادی در اولین قدم در طول تاریخ برداشت کرده است حالا از نظر معنوی رشد می کند بنابراین آنان که دائیه استادی دارند توانایی عمل کردن به ادعاهایشان را ندارند و کسانی که از این اساتید کازه پیروی کرده باشند پس از, از مرگ خود را در محضر یاما سلطان مرگ می دادگاهی که همه غیرواسلین بایستی در آن حاضر شوند. اگر این پیامبران و اساتید دروقین وعده توخالی وصل را بدهند پیروان آنها محصولات کل را درو کرده و در رشد معنوی و حیات فیزیکی خیش قوس انحطاط را تیگ خواهند کرد کتانی که به وصلهای بالا می رسند عضو حلقه درونی ماهانتا می گردند مثل مهدیس ها محدیث بایستی یک وفاداری محض با تدبیر و توان با شجاعت را پیشه کند که در غیر این صورت شایسته این مرتبه از حیات نخواهد بود اما چنانچه هر یک نسبت به یک استوار و ثابت بدن باشند امیقترین اسرار مراتب عالیه هستی را آموخته می گردند و این کشف اسرار تنها راه ترک از ایات آگاهی پیشین است و با طرق درونی و یا بیرونی اک انجام می گردند. بنابراین اگر کلا عضو حلقه درونی شود دیگر راه بازگشتی برایش وجود ندارد وای برو اگر چنین کنند. اده قلیلی که به این استفاعت درونی رسیدند شاهد پیامدهای های تصمیمی بودند این اده فهمیدند که با اتخاذ این تصمیم تیرگی معنوی بیدرنگ از راه می رسد و بر سلامت جسمانی زندگی مادی و زندگی معنوی فرد اثر می‌گذارد. و مرگ را جلو می اندازد. اعضای حلقه درونی از تا اطاعت محض دارند هر کدام بایستی با خون خود از ایک حراست کنند و آماده مواجهه با خشونت و تندی، آتش عذاب و سختی فقر و تنبود رنج و دلتنگی و مرگ باشند اگر موفق شود در شعف و نور غرقه گشته و صفای باطن می مستحق دریافت مائده های الهی میگردد. او در اقلیم معنوی از عالی رتپگان خواهد شد و نزده از عزیزترین بوده و در جهانهای بهشتی دست راست استاد حق در قید حیات است. هر تجربه معنوی تازه ای همچون موقعیت های جدید زندگی موجب فزونی تکامل چلا خواهد شد و یک تحول هوشیارانه را در تمامی ارکان وجودش پدیدار میگرداند. بنابراین این طبیعت معنوی موریدان ماهانتا دائما در حال تغییر است و به طبع آن شرایط زندگیشان نیز متغیر می گردد. زیرا این قانون حیات است که یا پیشرفت نمایی و یا پسرفت کنی اگر پیروی اکید از اراده ایت شده باشد هیچ مشکلی برای واسلی که مشتاق رسیدن به منطقه اکشار آگاهی مطلق می باشد به وجود نمیآید. آید یا شدیدن در گیر اعتقادات مذهبی هستند و یا با تکیه و دانش بشری در صدد کشف به اصطلاح اسباب و اشیاء طبیعت می باشند. و نیا که ات قوی میرو در تمامی کیهان خداست آن گرداننده ی همه چیز است. نیرویی که قیهان مخلوقات و کل اشیاء حیات را می و از هم می پاشد و آنچه که مشیت سوگمان و یا اراده واسطه آن یعنی مهانتا استاد حق در قید حیات بر آن قرار گیرد را اجرا می ماهانتا مهانتا قدرتمند ترین وجود قیهان های سوگمان است او میتواند به یک اشاره ملت و صورت حیات را خلق و یا نابود سازد وجود کل به اراده سوگماد است، بنابراین ماهانتا کاری با مخصص اهریمنی این خدای جهانهای تحتانی ندارد. برطاق بهشت نوشتند که کل فقط خدمتگذار ماهانتا و مقام متعال است و هرانچه از او سر میزند همان چیزی است که در کلاف تقدیری کتاب زندگی نقش بسته است. هر گونه رنج و عذابی که به فرمان کل میرنجان، بر ماهانتا می روید توسط استاد حق در غیر حیات اجازهش صادر شده است این اراده ی ماده است تا نمونه ای زنده از کمال معنوی مطلق را به دست بشر بدهد ماهانتا همواره خود را تسلیم مقام متعال کرده و هیکل انسانی خیش را در معرض رنج قرار میدهد. و در آخر آن را تا آخرین قطره خون قربانی میکند. قابل دشوار به فهماند که جار بقا فراسوی گور است او ثابت میکند که اک نیروی برتر کل کیهان بوده و سودماد مقام متعال است آموزش های لفظی او چه نوشتاری و چه گفتاری صرفاً هلالی از ماه درخشان حضور شخصیت و کلام زندهاش اش میباشند او لوازم طریق عشق را بدون نوشتن و گفتن بر چلاهایش آشکار می‌سازد که با یک اشاره لبخند، آغوش گرم، دست دادن و یا بوسه‌ای بر ها از طرف او باعث صعود معنوی انسان گردد. آن آگاهی او را احیا کرد و به وی انرژی و زندگی افسون می‌بخشد و بینشهای نوین و تمامیت حیات را عطایش می کنند. کل تاریخ تمدن قرض و مللی که مذاهب اصولی را اند، بر اساس اصل ایدئال مذهبی گناه بنیان نهاده شد هیچیک از مذاهب و فرهنگ های صورت پرست را یارای مقابله با این اصل اعتقادی نیست که بشر از بد به تولد گناهکار است و هرگز رستگار نمی شود مگر آنکه منجی معود را بپذیرد این تماما ساخته و پرداخته یک منطقه غلط است ولی امروزه انسان به تدریج به نادرستی آن پی میبرد او خود را در یک سرگردانی عمیق از کسرت عقاید و نیروهایی می‌یابد که برخواسته از مفاهیم تازه است که در محیط پیرامون او در جریان است. این مفاهیم عمدتاً توسط کلمات بیتناسب و ناموزون سخنوران و کتاب‌های مختلف شکل گرفتند اما تئوری گناه ازلی انسان از قدیمیترین ترین است هاییست که کنلیرنجان برای قافل نگه داشتن روح از رسالت حقیقی خود تراهی نموده است دامی که ارزامن زمان و تناسقات بیشماری را در این جهان طلب می کند لیکن انسان بایستی با آن روبرو گردد تا تصویه شده و با ورود به اقلیم بهشتی همکار سوگماد شود این ایدئال مذهبی در محکوم گناه یک دیدگاه باستانی است روح نه انسان با تشخیص اینکه آزادی حقیقی در در وصل توسط ماهانتا استاد حق در غیر حیات است با جدا شدن از این جهان به قوه مرکزی هستی خود وابسته می‌گردد تا زمانی که این لحظه در مسیر حرکت روح فرا نرسیده باشد آن بدون فهم ماهیت حقیقی زندگی زمینی خود پیش می‌رود بدین معنا معنی که مسیر حرکت او را احساسی از گناه منحرف می ساتن. این انگاره گناهکاری حاصل عقاید متعصدبانه است که در خلال حیات دنیبیش و در طرق مذهبی کسب کرده است در سرعت ارتعاشات کالبت نکتهان هفته است اغلب مشکل سلامت جسمی از اینجا ناشی می شود که ارتعاشات کالبت یا خیلی بالا و یا خیلی پایین می آیند. استاد حق در قید حیات می تواند بر طبق تنظیمات مناسبی که شفا اقتضا می کند آنها را افزایش یا کاهش دهد به همین دلیل است که بسیاری پنج می کشند. لیکن کمکی دریافت نمی کنند زیرا رهبرشان چیزی در مورد تنظیم سرکانس های شخصی که به امید شفا دنبال او به راه افتاده نمیداند. شفای فرد شدیدان بستگی به پاسخ مصفت او به روشی دارد که در آن استاد حق در قید حیات نسبت های ارتعاشی شخص متقاضی را تنظیم می نمودند بایستی باوری قوی داشته باشد و الا شفا نمی آبد گفتند که اگر شخص قائل به این باشد که چیزی محال ممکن است این یاس و ناامیدی همان را برایش پیش میآورد اما چنانچه در افکار و ندای دلش با سرسپردگی به استاد حق استقامت به خرج دهد و تمامی دلتنگی ها فائق میآید ماهانتا استاد حق در غیر حیات برای اینکه به هر یک از چلاهایش نشان دهد چه چیز برایش بهترین است آموزش‌های خود را با تبییز ارائه می‌دهد. بنابراین روشنبینی هرگز به اجبار به کسانی که طالب و یا مستعدش نباشند جاده نمی شود این تحفه تنها بر کسانی پیشکش می شود که تشنه دانستگی باشند آن در زمان و مکان مناسب از راه می رسد شکوفایی معنوی در کوچکترین وقایع زندگی نیز مقدور است نمایش های تماشاخانه این عالم، مذرق و هایی که توجه انسان را به سوی خود جلب می کنند تماما از جانب کل می باشند این تینت کل است که به طور جدی توجه انسان را به سوی صحنه های دراماتیک زندگی مثل جنگ و سیاست متمرکز سازد. اما شکوفایی معنوی در امور پیش پا افتاده و کوچک زندگی مثل خیر و نیکی در ارتباطات روزمره نهبانی و کودکان، نرمش در برابر کسانی که زودرنج هستند، بیازاری نسبت به مخلوقات خدا و ایثار به کسانی ای که از ضروریات زندگی بی‌وقفه اند، حاصل میشود. نمی نمیتواند یک بار و توسط یک نفر کشف شود، بلکه بایستی دوباره و دوباره رمزگششی شود. از آنجایی که بایستی معنا، ارزش حیاتی و قوت معنوی حقیقت از زنگار زمان حفظ شود، لازم است که دائما اصلاح شده و نوسازی شود این قانون رشد معنوی است که لازمش تجربه همان حقیقت واحد در اشکال همیشه تازه می باشد در این ره توسعه و ترویج روش هایی که از طریق آنها روح دانش، تجربه و حقیقت را تحصیل می کند مد نظر است و نه اخس نتایج کثیر. اگر فرد بر انجام تمرینات معنوی یک متعهد و پابرجا باشد روند توصیه معنویش پیوسته شده و همواره توسط او تجربه می شود این بدان معنی نیست که فرد نقطه اتصال بین گذشته حال و آینده می شود بلکه در گذشته او حیات مجدد دمیده شده و لحظه حال در تجاربش تا ابد جوان میماند و مختصات روند خلاقه آیندهش تغییر می کند در خلال این تجربه پیکره تاریخ برایش به کلی تغییر کرده و بخشی از وجود او میگرده تاریخ دیگر آن حالت عبرت و رجعت از اشتباهات گذشتهی که خالق الگوهای گناه و کارماهای سنگین او بوده نمی باشد بلکه به مدد ماهان تا استاد حق در غیر حیات ریشاهای اصلی وجودش براحتی از گذشته به ساختار زندگی فعلیش منتقل می شود و مورد تصحیح و آفت زدائی قرار گرفته و برایش تبدیل به اصول ذاتی حیات می گردند. در این حالت شخص فقط از گذشته به لحظه حال رشد می ولی دیگر به مشکلات گذشته که بخش از بدهی های کارمی که او به حیات هستند دوچار نمی شود حالا او متفق می شود که با همراهی ماهانتا و سیاستانتر می نسبت به شرایط و نقطه نظرات فعلیش در زندگی اشراف داشته باشد و این توان را در خود میبیند که آینده را از نوبی آفریند انسان نه قادر است گذشتش را به یاد آورد و نه طبع مردمانی را که در طول تاریخ سطح کره زمین را اشغال کرده اند شناسایی کند. چرا که او به خودی خود این قدرت را ندارد که در حریم فرهنگی زبان روحیات آداب و آدات ایشان در ازمنه مازی ماضی نفوذ نماید و بنابراین در راه فهم دیون کارمی که خیش شکست میخورد شاید این امکان برایش فراهم شود که زندگی های گذشتش را ببیند و بفهمد اما هرگز پیشرفتی حاصل نمی کند زیرا درکی از زبان، اعمال و شرایط اجتماعی اقوام گذشته را ندارد پس به این نتیجه مهم می که ماهیت تکوینی و ذاتی اکنکار نه در ناحیه بیزمان و عالم مجردات فهم می شود و نه توسط اصول دلگمی که از نظر باستانیان مقدس نامیده شده قابل درک است و نه اینکه در سخن آداب و رسوم و عادات مردمان كهن یافت می شود آن فقط منوس به شکوفایی روح در زمان، مکان و جهانهای بهشتی است به عبارتی در گروه حرکت، تربیت و ترقی روزافسون روح و تأثیر عالمگیر آن در تمامی جنبه و شعونات زندگی است و واضحتر بگوییم در پیوستگی کل حیات فهم می شود شاید گفته شود که ات هم جنبه از زندگی است که هم برای طالبین آزادی فردی جاذبه دارد و هم برای کسانی که علاوه بر آزادی فردی میل دارند با تحمل برای آزادی دیگران نیز خود را فدا کنند اما این فنا و نیستی بیرونی اک بیهکمت نیست حضن و یکی از است که فرد بایستی متحمل آن شود تا تطهیر شده و به جهانهای حقیقی رسد بنابراین هر گونه ایسار و فداکاری که شخص برای دیگری انجام میدهد حتی اگر تشخیص داده نشود و توسط اشخاصی که مورد ایثار قرار گرفته اند، مورد تو استفاده قرار بگیرد هرگز بیهوده نیست گذشت به هر طریقی نوعی فنا و قیبت از خیش می باشد و است در راستای آزادی و یک پیروزی برای فرد به حساب میآید انسان هرچه بیشتر خود را از ظلمت تعلقات نفس آزاد نماید و حسارهای زندان خود صافتش را بشکند صافیتر شده و شعاع وجودش تابناکتر می شود و زندگیش با آهنگ بهتری پیش می رود این از طریق اعمال خیرخواهانه صورت میگیرد نه از عبارات زاهدگونه و قراعت صرف متون مذهبی کسانی که خود را از زندگی کنار میکشند فرصت ایثار فنای خود و تسلیم را از دست میدهند. از طریق تسلیم هر هرانچه که عزیز و حیاتی به نظر میرسد میتوان به دیگران خدمت نمود کمک به دیگران در حقیقت کمک به خود ماست هیچ کس بدون دیگری کاری انجام دهد هیچ کس مجاز نیست که اعمال خیرخواهانه معنوی را به شخصی خود برای دیگران انجام دهد. بلکه بایستی از مقام بی اختیاری و تسلیم من نماید یعنی از مستر بی ذاتی که از ساحت دل جاری می گردد نماید ماهانتا استاد حق در غیر حیات همواره باره آدمونهایی برای چراهایش پیش می آورد. یک اشاره نگاهی مختصر یک تقاضا و یا یک دست طور در هر آزمونی وجود دارد او پیوسته مینگرد که چه کسی بر عهد خیش وفادار است؟ چه کسی منیت و خودستایی را عزیزتر می دارد و چه کسی فقط به خاطر جلب طرحم او را می خواهد؟ او کند وکاو می کند که چه کسی در باب ارتباطش با او و یا آزمونهایش سکوت می کند؟ آنان که در قبال مناسبات و پیوندهایشان با استاد حق در قید حیات قلوب نموده و یا در مورد تجربیاتی که وی داشتند صحبت می کنند سزاوار اعتماد و همراهی مهانتا نخواهند بود او به شرطی با چلا به طور سرزی صحبت و سلوک می نماید که موریدش اطرار را حفظ کرده و هرگز بر دیگران فاش ننماید و اگر کسی بر حفظ اسرار پایدار نباشد و یا از حسن اعتماد ماهانتا استاد حق در قید حیات سوء استفاده نماید خطوت رشد معنویش دوچار تعلیق و تحقیر میگردد سالک که حقیقی یاد میگیرد که ماهانتا استاد حق در قید حیات چه کسی است، و سپس به سراغ این گروی کامل میرود و موقعیت بیرونی استاد هم اصلا برایش اهمیتی ندارد او بایستی بداند که پرستش استاد حق در قید حیات همانا پرستش اک و صوبماد است بروست که عشق و وقفی کامل را از برای استاد حق در قید حیات به ظهور برساند و بدین ترتیب است که به آلمان خیشیانی روشنزمیری و قرار گرفتن در نقطه نزول برکات استاد حق در قید حیات دستی یافته و ازن ورود به حلقه بهشتی را یابد. این درستا که میگوید معبد حقیقی سودماد در درون مهانتا مستور است و کسی که به حقیقت الهی تن میدهد بایستی خاک پای او شود سودماد این فقیران و متوازه این را مورد خطاب و اطاب قرار میدهد که آن در جای معینی در زمین و یا عوالم قدسی زندگی نمی کنند. آن در قلوب اشراقش منزل کرده است و اگر مرا میخواهید بیایید و مرا بخوانید، پس مناسب آن است که هر جوینده واقعی استاد حق در غیر حیات زمان خیش را یافته و تحت تعالیم او قرار گیرد و عشق و احترام او را همواره نگاه دارد در کتیبه بهشت سخت است که هر چلایی که خواستار دیدار سودمال و طالب خدمت و عشق ورزیدن به اوست بایستی به همراهان اکیس خود عشق ورزیده و خدمت کند. تمامیت خدمت او در همین مطلب خلاصه می شود. او از همراهی ایشان سپاسگزار است و بنابراین به نحوی عاشقانه خود را برای آنها فدا می کند. زیرا سوقماد میگوید که آن نه در آسمان بهشت است و نه در خاک زمین آن مقیم در خلوت دلهای عاشق است کالوت انسانی مهانتا استاد حق در غیر حیات تنها یک تجلی بیرونی است ذات او عین صوبماد است و از برکات رحمت حقیقت الهی قوت خیش را میابد رهرو حقیقی تا زمانی که قادر به تشخیص ذات متعال در درون خودش نباشد ناگزیر بایستی و شکل انسانی مهانتا مراقبه کنند و این را بداند که آن خود سودماد است و میبایستی در این راه گذر بر عشق و خویش حقیقی پایبند و مقید باشد. و زیرا اعتقاد بران است که بالاترین هدیه‌ای که میتوان از مهانتا استاد حق در غیب حیات دریافت نمود نوشتجات می میباشد اما چنین نیست اسرار معنوی اصیلی که ماهانتا کلیدار آن میباشد هرگز نمیتوانند با مرتبه نوشتجات تنزل کنند در هیچ نوشته ای اشارت مستقیمی بر این حقایق اسراری نرفته است تنها در اوراق و اسنادی پراکنده و مبهم در مورد آنها صحبت شده است نوشتجات تنها مدرکی دال بر واقعی بودن امور معنوی است نه بیشتر. به مطلق تنها از مجرای ماهانها جاری می شود. مطالعه کتابها فقط سهم و بهره دانش ذهنی را افزایش می دهند. کتاب نمی طریق رؤیت سوود را نشان دهند. آنها فقط در محدوده فهم دانش پرخت را یاری می کنند و تنها درست و غلط معنوی را نشان میدهند. جلی هم که خلوص دل داشته باشد، درستی را دنبال می و به آگاهی اکشار می رسند. شهوت خشم تمع وابستگی و خودستائی در درونیترین هسته ذهن ریشه دارند آنها فقط با وقت به مهانتا استاد حق در غیر حیات و این که تا چه هد عشق به استاد درون پرورش داده شود سمت انهدام به خود میگیرند. وقتی که عشق حقیقی در درون کشف مقصود چلا حاصل شده است آنان که کل زندگی را وقف وابستگی های دنیاوی می کنند به هنگام مرگ تنها می مانند خانواده ایشان تا آرامگاه در کنار آنها می باشند اما ماورا مرگ را به تنهایی طی می کنند ها حتی در زمان حیات در این دنیا معمولا به هنگام تنهایی مشبش می شوند این تشویش به هنگام مرگ به شدت فزونی میابند سیشان و نزدیکان فرد او را تادم آخرین زندگی فیزیکی همراهی میکنند ولی به وقت مرگ فقط مهانتا میتواند با او باشد. حتی زندگی فیزیکی نیز با کمشت و همراهی ماهانتا استاد حق در قید حیات معنی میابند با برخورداری از محبت انایت و توجه مهانتا انسان در موقع رهلت فیزیکی خود در حس نمی کند اگر کسی نمی تواند بیرونی استاد حق در قید حیات را با خود داشته باشد لازم است در تمامی اوقات استاد را در افکار و قلب بنشاند خوب است که شخص در تمامی انواع علوم مذهبی تبخوریاب یابد. اما اگر عشقی به عک نداشته باشد همه این اندوخته‌ها برایش بی مشابه چون این کیفیتی است که دنبال روی مهانتا می باشد اما عشقی حقیقی از برای او ندارد تا وقتی که عشق و بندگی اک توسعه نیافته باشد شکوفایی معنوی هم پا به عرصه نمی گدارد آنان که فقط به وقت نیاز و ضرورت به اک می‌اندیشند، به هیچ روی رشد معنوی را از آن خود نخواهند کرد اما کسی که عشقیت سوزان برای ماهانتا داشته باشد وصول به گشایش معنوی را نصیب خیشتن می نماید مورید می در حواس معنویش از یاد دنیا بیخبر باشد و فقط مطابق عوامر اکتیش پیش رود. او نمی باید ارکان عقلی و منطق خیش را در زندگی معنوی لحاظ کند تا زمانی که از دنیا طلب کار باشد و خود را عضوی از جهان مادی ببیند دقیقا همین متاع مادی را خریدار خواهد بود و جویبار معنویتش همانند آبباریکهای در آفتاب کبیر به خشکی می‌گراید. او زمانی یک راهرو حقیقی است که قلباً به ماهانتا استاد حق در قید حیات اعتقاد داشته باشد تمرینات معنویش را به صورت منظم انجام دهد و ایمانش به یک روز سون باشد ما یا که کل جهان را در سیتره خود دارد کاملا تحت کنترل ماهانتا استاد حق در قید حیات است اگر کسی دلنگران جداسازی خود از توهمات مایا باشد باید فقط به ماهانتا ارضه نیاز کند او باید این را بدون توجه به اینکه مورد تعریف و تمجید و یا مورد تن و ترد این جهان قرار میگیرد بجای آورد و فقط آنگاه است که در زمره پیروان حقیقی اک به حساب می اگر پیروی او محدود به شرایط کامیابی و لذت بوده و به هنگام ملامت و مذمت خلق تا مقاومت نداشته باشد و از اک بیرون رود هرگز نمیتواند تواند عک اک شبر. او تنها زمانی اک واسل اک است که آمادگی تحمل و مواجهه با هر چیزی را در این زندگی داشته باشد ریشه تمامی بندها و قیودات جهان در خود بینیست اگر انسان اصول اک را درک کند تمامی اصول جهان را شناخته است و اگر حتی از یک یا دو اصل آن غافل گردد دیگر از قابلیت کمال ادراک محروم می شود پس به همین نهج کسی که با التفات مهانتا کمند خودستایی را در دستان خود می از تمامی قید و بندهای دنیا آزاد می شود آنان که سایه ماهان تا استاد حق در قید حیات بر سرشان نباشد صورت پرست میشوند و در سلسله مراتب خلقت تنها کمی بالاتر از مخلوقات مادون قرار میگیرند این جمله را رهروان حقیقی طریق اک درک میکنند نه انسان های طلب دنیا که به عوض باور و بیعملی در برابر کارکردهای عک خصومت و مخالفت به خرج میدهند روح راكب بر کلمه گرفتار قیودات و وابستگی ها شد و تا زمانی که ماهانتا استاد حق در قید حیات این اسم اعظم را از چلا دریق کند روح قادر به بازگشت به منزلگاه حقیقیش نمی باشد آن فقط با طی طریق اک و به قدرت نام اسراری خدا که توسط استاد حق در قید حیات به آن ابلاغ می شود می تواند دان آستان معلا برسد هیچ راه دیگری برای گریز از اصالت جهانهای پایین وجود ندارد خیلی مهم است که در اعمال خود چیزهایی را در اولویت قرار دهیم که مشوق فروتنی است بعد از دست هدایتگر مهانتا استاد حق در قید حیات حلقه انجمن مهدیس ها بهترین منبع توصیه‌ی چنین اولویت هایی است اما روحانیونی که در پی ثروت و شهرت هستند راه به فروتنی نمیبرند آنها تمع ناخشنودی و خودستایی را بر خود اضافه میکنند کسی که صدای فضیلت خضوع را در سر داشته باشد می بایستی در وهله اول در ماهانتا استاد حق در غید حیات پناه جوید او نمیتواند به دیگران دل ببندند ماهانتا استاد حق در غیر حیات اهل معجزه کردن نیست او پیوسته بر اساس مشیت سوگماد رفتار می کند و اطرال چنین این نیروهای معجزگری را مخفی می کند این امکان وجود دارد که در صورت اراده سوگماد از این قدرتها در مواقعی خاص و در مقیاسی کوچک استفاده کرده و معجزاتی را انجام دهد اما در مورد کل دنیا و در مقیاس کلان هرگز به دین اعمال مبادرت نمی کند چنانکه موجزه کند مجبور است که هرچه چه ترین جهان را ترک نماید و پیروانش را تنها به گدارد زیرا ناهلا و مدعیان او را احاطه خواهند کرد کسانی که فقط در طلب قدرتند و هیچگاه جویندگان حقیقی نمی باشند. روح در ما دشمنان است که دوستان کل هستند و هیچ یک یار و مونس آن نمی باشند حتی ذهن هم روح را به سان گربهی که موس را زیر نظر دارد نظاره می کند ارواحی که پیرو کل بوده و در استختام فرمانهای او هستند متحمل درد می شوند همه آنها تا زمانی که در اقلیم ذهن و ماده به سر می برند محکوم به زجر و تحکامی می باشند ولی کنانان که دنبال رو به مهانتا استاد حق در قید حیات باشند از برکات او سرشار می شوند و حتی کلیرنجان نیز از اینان خوف دارد بنابراین عاقلانه ترین راه آن است که سرد خیش را به مهانتا بستپارد و تنها اوست که هم در این جهان و هم در عوالم ماورا ناجی او خواهد شد هیچیک از پیروان مهانتا در لحظه مرگ دوچار درد و استراب نمیشوند، بلکه در آن زمان از آرامشی کثیر برخوردارند آنها به خوبی از بحرانهای آینده مطلعند و با حالتی وارسته به امور دنیوی خود می میکنند. و شریان تعلقاتشان از دنیا منقطع میگردد. میوه تمرینات معنوی از چشم عوام پنهانند اما توسط کفانی که مرید مهانتا بوده و از فیض دستگیری او به هنگام مرگ کالبد انسانی برخوردارند چیده می شود باور لازمه پیشرفت معنوی است بیان تحولات معنوی محال است و هیچ چیز تغییر نمی کند اما به ریسمان ایمان پیروان می توانند توسط مهانتا استاد حق در قید حیات از دربازه های مرگ عبور کرده و یاما سلطان مرگ را پشت سر گذارند و در طبقه ای رهل اقامت افکنند که با با مجاهدت خود در زندگی کسب نمودند